فصل دوم ساعت هشت لباس مرتب پوشیدم و به خونه زینوشکار رفتم. خدمتکار مثل دفعه قبل با بدخلقی در برون باز کرد. صدای خنده و حرف از مهمون خونه به گوش می‌رسید. در اتاقا که باز کردم رو دیدم که روی صندلی نشسته. مهمونا توی اتاق بودن. همه دور هم نشسته بودن. با صدای بلند حرف میزدن و میخندیدند. زینوشکا تا منو دید از جا بلند شد. همه ساکت شدن زینوچکا با صدای بلند گفت مهمونه تازه داریم جلو اومد کنارم وایساد و به مهموناش گفت پسر همسایه توجه مهمونا به من جلب شد زینوچکا با دست به تک تک مهمونه اشاره کرد تا معرفیشون کنه دکتر لوشین، کونت مالدوسکی، شاعر مایدانوف و بلوزروف همونی که دیروز برای زینوچکا بچه گربه و بود دکتر لوشینم دو سه روز پیش توی باغ دیده بودم اما دیگران رو نمیشناختم. حس کردم صورتم سرخ شده بلا تکلیف بودم نمیدونستم چیکار کنم زینوشکا به صندلی اشاره کرد تا بشینم معلوم بود مهمونا از ورود من زیاد خوشحال نشدن. روی صندلی نشستم همه ساکت بودن. زینوشکا تلاش کرد مهمونی رو دوباره به حالت قبل برگردونه با صدای بلند حرف صد و لطیفه تعریف کرد خیلی زود جمع دوباره دوستانه شد. اون شب پیانو زدیم و آواز خوندیم. کنت مالدوسکی تردستی کرد و مایدانوف تکه هایی از منظومه و خوند. سر به سر خدمتکار پیر خونه گذاشتیم و به هر چیز کوچیکی میخندیدیم. فقط بلوظروف بود که اخم کرده و عصبانی گوشهی وایساده بود. آخر شب بانوی صاحب خونه اعلام کرد قصد خوابیدن داره. ساعت دوازده بود که شاد و خوشحال از اونجا بیرون اومدم باد شدیدی میوزید باد بین شاخ و برگ درخت میپیچید به خونه که رسیدم خدمتکار رو توی راهرو دیدم فئودور بیچاره در انتظار من توی راهرو خوابش برده بود از کنارش که رد شدم بیدار شد گفت مادرم از دستم عصبانی شده اما پدر کمی آرومش کرده. به اتاقم رفتم، بدون اینکه لباس عوض کنم روی صندلی نشستم. به اون چه که در اون شب پشت سر گذاشته بودم فکر کردم. شب پر پرهیاهو اما شیرینی بود. لبخندی روی لبم نشست. دستم و روی قلبم گذاشتم تا کمی تپش تند قلبم و کنترل کنم. دراز کشیدم. دوباره از جا بلند شدم، نشستم. پشت پنجره رفتم. به صدای طوفان که از دور دست می اومد گوش دادم. آسمون برق میزد شاخ و برگ درختا در هم میپیچید هوا مثل دل من بیقرار و بیتاب بود. اونقدر پشت پنجره وایسادم تا آفتاب طلو کرد. تازه اون موقع بود که حس کردم آرومم سر صبحانه مادر خواست از شب گذشته حرف بزنم کوتاه و مختصر از شب نشینی مهموننا گفتم مادر ناراحت گفت عوض درس خوندن شب نشینی و مهمونی میری میدونی باید برای امتحان آماده شی؟ بهتر بود سکوت کنم تا بحث همونجا تموم بشه بعد از صبحونه پدر خواست با هم به باغ بریم بین درختار را رفتیم و به صدای آواز پرنده گوش کردیم کمی که گذشت پدر وایساد دستم و گرفت و از خونه زینوشکا پرسید اونقدر پدر رو دوست داشتم که پاسخشو بدم. پدر همیشه برام تحسین برانگیز بود. اون نمونه ای از یک مرد محترم بود. بعضی اوقات مثل دوست کنارم بود. گاهی با هم توی حیات بازی می کردیم و گاهی مثل دو مرد کنار هم می و با هم حرف می زدیم. البته گاهیم به سردی از کنارم می گذشت. طوری که حس می کردم از من فاصله می گیره. گاهی چنان با محبت میشد که دلم از شوق می تبید. اما ساعتی بعد غریبه ای بود که دلش نمیخواست هم صحبتم باشه پدر مرد عجیبی بود زمانی که از مهربونی و خوبیش پر میشدم دیگه نبود بعدها که در مورد رفتار پدرم فکر کردم به این نتیجه رسیدم پدر وقت اینکه همراه خونوادش اش باشه رو نداشت پدر معتقد بود راز و رمز زندگی اینه که تابه هیچ کس نباشی، فقط متعلق به خودت باش ماجرای شبنشینی رو کامل براش تعریف کردم اون با چوب بلندی که دستش بود روی زمین خط میکشید، میخندید و میپرسید تا کامل تر تعریف کنم از زینوچکا براش گفتم اول خندید، اما بعد به فکر فرو رفت از جا بلند شد با هم از باغ بیرون اومدیم به خدمتکار دستور داد، اسپشو آماده کنه سوار اسب شد بدون کلمه ای حرف با سرعت از جروی چشمام دور شد اونقد وایسادم تا از دروازه گذشت از پشت پرچین دیدم که به خونه ی رفت همونجا منتظر موندم یک ساعت بعد از خونشون بیرون اومد و به طرف شهر رفت ظهر بعد از اینکه که نهار خوردم به خونه زینوچکا رفتم. مادرش تنها توی مهمون خونه نشسته بود. تا منو دید از جا بلند شد. تکه کاغذ چروک و تاشده یوورد و خواست براش متنی بنویسم. همون موقع در اتاق زینوچکا باز شد. رنگ پریده و نامرتب وارد شد. سرد و خشک نگام کرد. دوباره برگشت به اتاقش و در بست. از اون روز به بعد بود که حس کردم آشغ حس می کردم یک بار قد کشیدم و بزرگ شدم دیگه پسر بچه نبودم مرد بالغی بودم که عشق و تجربه می هرچند این عشق برام درد و رنج همراه داشت وقتی زینوچکا نبود دست و دلم به کاری نمی رفت دوری ازش آزارم می داد. میدونستم در مقابلش ناچیزم مثل بچه ها قهر میکردم و کمی بعد برای آشتی به دست و پاش میفتدم زینوچکا خیلی زود فهمید به اون دل بستم خودم هم دنبال پنهان کردن احساسم نبودم مدام سر به سرم میذاشت و مسخرم میکرد بلد بود چطوری منو بازی بده البته تو این بازی من تنها عاشقش نبودم تمام کسایی که اونو دیده بودن عقلشونو از دست داده بودن اون نیاز به تایید همه داشت. نیاز داشت یکی احساسات شاعرانشو تامین کنه، یکی هم صحبتش باشه و دیگری ازش تعریف کنه. میون این آدما ارتباط زینوچکا با کنت مالدوسکی برام مجهول بود. سر در نمی چرا به این خونه رفت آمد میکنه؟ چیزی مشکوک در وجودش بود که باعث میشد از اون دوری کنم. یه بار که از زینوچکا پرسیدم چرا به خونشون میاد فقط خندید؟ فهمیدم دیگه نباید سوالی ازش بپرسم هر روز اونو میدیدم ترجیح میدادم به خونهشون برم مادر زیاد مهربون نبود خودمم راحت نبودم اما پدر رفتارش بهتر بود درس و مشق و کامل کنار گذاشته بودم دیگه سواریم نمیرفتم مدام دور و خونه زینوچکا میچرخیدم مادر غرغر میکرد کرد، گاهیم زینوچکا ردم میکرد این جور مواقع خودم و تو اتاقم زندانی میکردم اون لحظات حال خوشی نداشتم. از فکرش بیرون نمیومدم. پریدن کلاغا، آواز گنجشکا، عطر گلا و حتی پربانه های سفیدی که و برم چرخ می زدن، اونو به یادم می آوردن. واضح بود زینوچکا منو بازی میده مثل بازی موش و گربه، یه روز تحویلم می گرفت و روز دیگه از خودش میروند منم ویران و واله. روزی توی باغ کنار پرچین نشسته بودم که زینوشکارو دیدم بی حرکت روی علفا نشسته بود سرشو که بالا آورد منو دید اشاره کرد نزدیکش برم از پرچین بالا رفتم و نزدیکش نشستم رنگ پریده بود تای چشماش غم بزرگی خونه داشت بی اختیار پرسیدم چی شده؟ نگام کرد دوباره پرسیدم چیزی شده؟ لباش تکون میخورد انگار داشت توی خواب حرف می زد تو منو دوست داری زبونم بند اومده بود زینوشکا سرشو پایین انداخت و زیر لب چیزی گفت سر در نیاوردم دستش روی صورتش گذاشت و کلمات نامفهومی گفت حس کردم گلوم درد میکنه نمیدونستم چی بگم زینوشکا در هم فرو رفته و غمگین مقابلم نشسته بود نمیدونستم چیکار کنم بعد تو شاخ و برگ درخت ها می و روی صورت زینوچکا دست می کشید دلم آشوب بود زینوچکا دستش روی چشماش کشید حس کردم گریه کرده یا می خواد گریه کنه دوباره نگام کرد و گفت برام شعر بخون توی ذهنم دنبال شعری می گشتم تا براش بخونم پیش دستی کرد و گفت شعر روی تپه ها رو بخون شعر رو خوندم به مصرع پایانی شعر رسیدم چند بار تکرار کرد نمی توانست نباشد نمی توانست نباشد از جا بلند شد و با صدای گرفته گفت روزی که از همه چیز در آوردی، ازم نرنج بعد به طرف خونه را افتاد کمی که دور شد برگشت و گفت مایدانوف شیر تازش شو برام بخونه تمام این مدت کنار مادرم نشسته قدمهاشو تندتر کرد تا بیشتر نرنجیده باید برگردم خونه با هم رفتیم خونشون. مایدونوف شعر بلندی که تازه سروده بود خوند اما من یک کلمه هم از شعرش متوجه نشدم تمام حواسم پیش حرفای زینوشکا بود مایدونوف صداشو بالا و پایین میوورد و دستاشو در هوا کن میداد اما من فقط به زینوشکا نگاه میکردم یه دسته که سرشو برگردوند، نگاهش به نگاه هم گره خورد. لرزیدم. زینوچکا آشق بود. اینو از چشماش میخوندم. اما آشق کی؟ از اون به بعد دلم بیشتر آشوب شد. زینوچکا تغییر کرده بود و این تفاوت حس میکردم. دیگه تو خونه نمیموند. مدام تنهایی توی باغ قدم میزد. پنهانی زیر نظر گرفتمش. هر جا که میرفت دنبالش بودم. فکرم پیش تمام کسانی که با اون در ارتباط بودن رفت. اما به نتیجه نرسیدم. روزی در منزل زینوچکا نشسته بودم. دکتر لوشین کنارم بود. زینوچکا هنوز از گردش توی باغ برنگشته بود. دکتر نگاهی به سر تا انداخت و گفت تو هنوز خیلی جوونی. راه زیادی داری. اما درس و مشق تو کنار گذاشتی و همش اینجایی. چرا وقت تو اینجا هدر میدی؟ من به همه کارام میرسم لبخند ترخی روی لبهای دکتر نشست <تصفيق> هوای اینجا برای تو مسمومه برگرد و به فکر زندگید باش پسر جان به فکر آیندهت میدونستم که حق با اونه اما نمیخواستم بپذیرم دکتر گفت البته اگه منم احمق نبودم اینجا پیدام نمیشد تو که پسر باهوشی هستی چرا سرتون نمی چرخونی ببینی دو بره چه خبره؟ همون لحظه زینوچکا همراه مادرش وارد اتاق شد مادرش از درد دندون مینالید. در میون ناله از دخترش گله می کرد چرا مدام آب یخ میخوره؟ خوره بی حوصله به مادرش نگاه کرد و گفت پایان زندگی هممون مرگه نهایتش منم می میرم. نگام کرد اما خیلی زود سرش رو برگردون بی به من و دکتر از اتاق خارج شد زینوچکا رو با تمام بحونگیریاش دوست داشتم هرچند بی و بی طاقت شده بود به شعر مایدانوف شاعر ایراد میگرفت. به اطرافش بی توجه شده بود و خیلی وقتا حواسش پرت بود اون روزا بی اختیار با خودم می گفتم آشق شده اما آشق کی؟ رفتار زینوچکا روز به روز عجیب تر می شد. روزی دیدمش که روی صندلی نشسته بود و سرش روی میز گذاشته بود تا صدای در شنید نیم خیس شد. صورتش خیص اشک بود. نزدیک رفتم. نگام کرد. چیزی در نگاهش بود که برام ناشناخته بود. انگار درد میکشید، چیزی آزارش میداد، دوباره سرش رو روی میز گذاشت و با صدای گرفته گفت. برو از اینجا. برو. به خونه برگشتم. اوضاع خونه خوب نبود. مادر و پدر، با هم جر و بحث کرده بودن پدر از خونه بیرون رفته بود مادر توی اتاقش بود به دیدنش رفتم مثل همیشه از رفتارم شکایت کرد برای اینکه به موضوع خاتمه بدم دستشو بوسیدم و از اتاق بیرون رفتم صورت زینوچگاه لحظه ای از جلوی چشمم دور نمی شد. دلم میخواست با صدای بلند گریه کنم حال خوشی نداشتم دلم به حال خودم می سخت. گلخونه تنها جایی بود که آرومم میکرد روی دیوار بلند گلخونه نشستم به دور دست ها نگاه کردم به صدای ناقوس کلیسا که در میان آواز پرندگان گم شده بود گوش میکردم حس کردم نسیمی روی صورتم نوازش نبازش میکنه صدای پرندگان اوج گرفت نسیم دورم چرخید و با موهان بازی کرد چشمم به پایین که افتاد زینوچکا وایستاده بود سرشو بالا گرفت لبخندی روی لبش نشست اون بالا چی کار میکنی؟ هنوز لبخند روی لبش بود گفت اگه منو دوست داری از همون بالا پایین هنوز جمله تموم نکرده بود که انگار یکی حال هم داد پریدم پایین روی دو پا زمین افتادم تعادلمو از دست دادم و از هوش رفتم وقتی چشمامو باز کردم نگاه نگرانه شدیدم با التماس میگفت بلند شو حالت خوبه؟ دوست دارم دلم میخواست تا ابد تو همون حال بمونم و اون از دوست داشتنش بگه حالم که بهتر شد گفت این چه کاری بود پاشا لباستو مرتب کن و برو خونه دیگه هم دنبال من را نیفت باشه؟ پاهام درد گرفته بود اما اینقدر حس و حالم خوب بود که دردش در نظرم ناچیز بود روز بعد به خونشون رفتم پیش خودم گفتم حرفی از افتادنم و مهربونی دیروزش نزنم اما زینوچکا تا من را دید لبخندی زد و پرسید حالت خوبه دست و پا درد نمیکنه زینوچکا از این اتاق به اون اتاق میرفت هر موقع چشمش به من میافتاد لبخند میزد درست مثل بزرگتری که به پسر بچه‌ای لبخند میزنه چقدر تلخ بود که در نظرش بچه بودم کمی بعد بولوزروف اومد به زینوچکا گفت براتون اسب آرومی پیدا نکردم. حقیقتش میترسم. زینوشکا با تعجب نگاش کرد. از چی میترسید؟ از اینکه شما سواری بلد نیستید و امکان داره از روی اسب بیافتید زینوشکا قیافه ی حق به جانبی گرفت و گفت: این دیگه به خودم مربوطه. باشه. اشکالی نداره. از پیوترو واسیلوویچ میخوام برام اسب پیدا کنه. پیوترو واسیلوویچ اسم پدر من بود. از این که اینطور راحت اسم پدرم و به زبون میوورد جا خوردم. بلازروف هم کمتر از من تعجب نکرد. پرسید. پس با اون به سواری میرید؟ زینوچکا روش و برگردوند. برای شما چه فرقی داره؟ بلازروف با صدای آروم اما مطمئن گفت. خودم براتون از پیدا میکنم کنم. سرت سرتکون داد و به من نگاه کرد. پرسید. شما هم میتونی با ما همراه باشی. بدون لحظه درنگ گفتم سوارکاری دست جمعی دوست ندارم زینوچکا شونه بالا انداخت مادر زینوچکا از گوشه اتاق داد زد ای تو که حرف از میزنی پولشو از کجا میاری؟ زینوچکا عبروهاشو درهم کرد و به مادرش گفت نگران پولش نباشید بلوظروف برام اصب میگیره از جا بلند شدم زینوچکا برای موندنم تعارف نکرد روز بعد لباس پوشیدم و از خونه بیرون زدم. میخواستم با خودم تنها باشم تا شاید و ساعتی فراموش کنم. به صدای آواز پرنده‌ها گوش کردم. روی شاخه‌های درختای در هم فرو رفته دنبالش گشتم. سعی کردم از صداشون بفهمم خوشحالن یا نه. روی علفا دراز کشیدم. نور خورشید از لابه‌لای ها به صورتم میتابید. نسیم صورتم و نوازش میکرد و بوی خاک و با خودش میاورد لذتی شیرین در وجودم نشست اول فکر کردم زینوچکا تو این خوشی جایی نداره اما زود متوجه شدم به هر سمت که نگاه میکنم اونو میبینم آرزو میکردم ای کاش کنارم بود حتی وقتی شعری رو زمزمه میکردم مخاطبم فقط اون بود خواستم منم برا شعری بگم اما بجز آه زینوچکا ترجیبند دیگهی به زبونم ننشست فکر کردم بدون شک مردای زیادی عاشقشن اما هیچ کدوم مثل من دوستش نداشتن این من بودم که به خاطر اون از بالای درخت پایین پریدم دوباره حس اون لحظه توی جانم دوید یاداوری مهربونی اون روزش لبخند به لبم آورد زهر که شد از جا بلند شدم وارده ای شدم که راهی باریک به طرف شهر داشت راه افتادم صدای خفه اسبی به گوشم رسید وایسادم و کلاه از سرم برداشتم تا سوار بگذره پدرم بود که سوار بر اسب کنار اسب زینوشکا با هم به طرف من می اومدن سرش سرشو پایین انداخته بود و به حرفای پدر گوش می داد با لباس افسری بود زینوشکا رنگ پریده بود تا خونه یک نفس دویدم. پدر قبل از من رسیده بود. لباسش رو عوض کرده و دست و روش و شسته بود. مادر مثل همیشه عصبانی بود. میخواستم حرفی بزنم اما نگاهم به پدر که افتاد سکوت کرد.